و آله و آخرین من شد مجمع. و درائمت اللهم بحثی بود در بحث غیر از خود اصل حجیت زواهر محکومه استاد از کنیم که نباحث و طبعه نسله یکی دو تا تصدیل هم در این بحث حجیت زواهر نعقل کرده یکی تصدیلی که از علمای افترابی سازی به حجیت کتاب که این شما بعد متعرض میشون یکی تصدیلی که مرموم محقق رو میپردن به زواهر نصورد من قصد افهامو حجیت غیر مقصود به افهام حجیت نیست یکی هم تصدیلی که کردیم به قصد افهامو حجیت نیست متاخترین مثل داده شده سه آجه در کتاب اشارات به اون که مثلا زواهر وقتی کجاتن که زمین به وفات بدا شد این سه تفصیلید که استاد در نصواح برده و که ارز کرد این تفاصیل بیشتیمه مضموم شیفه انساری در کتاب نظره ساله رو بیشتیمه برده. از این سه تفصیل بیشتر دیگه نیم و از کردیم احتمال هست تفصیل محق قرمی قدس الانسر ریشهاش کلام میبوشی در معالم در بحث خفاو مشافه آمد اینا همه گذنش و, و لذا از کردیم که تحلیل دقیق کلام صاحب قوانی و یا صاحب معالم در دو محره انجام میشه یکی اینکه که زواهر عبارات این دو بزرگوان این از که ما در روایات تحلیل ایتی در آیات مشکل داریم مثلا است در این روزو داره قرائم موجود فعلا فیلن در سمانیز. یا این این که احمان سوامونداله این مطلب بوده زراره برمودن قرائم پیچه بین امام و زراره بوده فیلن در. این شده به این صورت مشافه و غیر مشافه یا محصول به احمان و غیر محصول و لذا عرض کردید برکن محقق قومی نتیجه نهایش هم این شد چون احتمال این قراره می باشید است نرسیده رجوع ما به این از باب زن مطلقه نه زن خاص. نه اینکه این ببایات به عنوان ها وجدن نه به عنوان زن مطلق خلاصه یه کلام محقق قومی عرض کردید این کلام یک دفعه راجع به بحث روایات دیروز تقریم بحث رو دیگه این اختصاص دادیم و ان مقانی حجر خبر رو توضیح دادیم و ان مقانی مطلب رو توضیح دادیم و قبول کردیم که در روایات تقریح هست، مشکلات مسوری هست، مشکلات سندی مطمی یا به ترگیر مرمون محقق بهرانی تا حداره ایشون اصلا مشکل اساسی رو در روایات طبیعه میدونن رو تلاح آقای میدوند محصول به افهان از کلمه تحبیه رو بیشان ریاض بکار میوانی تمام مشکلات رو از تحبیه به اطلاح رو بودت ما جهد و صدور می دونه. اونم هست اونم یه مشکله صدور هست مدنه هست دلالت هست خب مشکلات است، اما برای مشکلات میشه قلبه کرد قلبه ما با محرق قومی این مشکلات قابل حل هست و حق رو هم با امثال سید مرتضا می دونیم که در نتیجه معتقد با مجموعه شواهد رسوق به خود فیدار نه زن مطلق اون نتیجه نهایی که مردم محقق رو می گرفتن زن مطلقه نه به زن مطلق نمیرسه. ما با مجموعه شواهدی که در دست داریم به رسوق به اتنیان می رسیم. این توضیحاتش دیروز بوداشه بحث دیگری که مزه اون کبرای بحثه که اصولا زواهر نسبت به مرموسه حامو جدیانه عبارت مرموم استاد رو خوندیم توجیهی که مرموم استاد و از پرزن هنشیف برای کلمات مرموم محقق رو میخوندیم و از احتمال هست مراده محقق قومی همین ها باشه از سر کلمات محقق قومی در چند بحث آمده در کتاب قوانین هم در جلده یک هم در جلد دو فعلا جلده یک شوشی نمود چه من نبود با دقتی بیشتر عبارت جلد دو خیلی روشن روشن نیست اونی که ما از عبارت ایشان شدنه در میابی این است که خب محتمال از رایی متکنم و شنوانده قرائده بوده به ما نرسی ممکن از بین امام صادق و زراغه قریمه بوده خوب خب نیدونیم مثلا فصل زراغه میخواد عبود جرفتر لا تا عاد و صلاة الله مرخمز خب خیلی بعیده فصل امام باقی در مدینه منزل بودن جناب خدمت خدمتشون تشرفت ادایی شده حضرت انجا افرام سامنان یاز غرال الله سعاد و سلام الله مرخمز خبایده یه صحبت قبلی بعدی خیلی بعیده یعنی بعید انسان به ذهنش میاد که مثلا اینجور کلام ابتدارن بدون قبل و بعدی مثلا از امام صادر شده باشه خب این یه فهم است این احتیاج به این راهی رو که استاذ رفتن نذاره احتمال هست قرارهی که این قراره نمونه هست خوشم برای اثر تفتیر ر این نهدار از بحث که احتمال هست خب جوابش هم فقط زیادی میشم اونی که برای اون مستاد و اصولا ما ارز کردیم درست سوا در روایات در متنش احتمال پسیخ میدیم زیاده نقیصه کم زیاد لیکن این رو هم فراموش نکنید که این احادیث منشأ دین بوده این تصورات که قرینه باش و خطی شده و از مرسا تردیمشونی که اصحاب ما هم ورهشون اختزار میکرد این کار رو بکنن و هم به ساقتشون و که بالاتر از او اینا نظرشون این بود که این کلمات امام دینه از کلمه این دباییت در این مهد در دباییت ما آمده در احل سنت آمده و عجیب که مثل هم میبینیم قیلی نمیفهمیش توی شده در کتاب احل سنت هم تو حدیث دارن و علمو انه حدیث کن و حاضر دینم فندو رو هم من تأخذون دینکن بگرد پس این تاریخ تبری و فسته و اینها نمده این مطلب درست احتمال داره لیکن چون مسئله مسئله دین بوده و مسئله شریعت بوده و وظیفه دینی در دنیا و در آخرت و چه در روز قیامت مثلا اینکه که بدون شک اصحاب مخصوصا اصحاب هست تدوین حدیث در کوفه بوده قطعا اصحاب آمدن شواهد ارائن اون چی که موجب اتفاق به کلامه نرقای کردن توجه کردند. و لذا که کردن سید مرتضا بحث و بحث رو با تلقی اصحاب میکنه، سید و بعضی هایی که ترسداریشون هستن اینا به دنبال حجیت تحبدی خبر نیستن حتی به دنبال حجیت اوهلایی خبر هم نیستن اینا به دنبال مسئله تلقیه و قبول این عبارت سهل ولی اشماه اشماه اشماه اشماه اشماه تلقیه و قبوله ولی زا هستم سهل دونی ما با این تلقیهات و قبول به وصول میرسیم نه به زن مطلب روشنی سهل شما میهن خبر رو به تنهایی نگاه میکنید خبر رو در پرتو و عمل اصحاب نگاه میکنید تلقیه و قبول نگاه میکنید پس این خبر و اخبار و روایات دین است و اصحاب نهایت احتمام رو برای ضبط و غفت او به کار بودن و اضافه برای این که سعی شده این نسخ روش کار بشه از بسید من ارزگردم اصحاب ما کسرت روایت نداشت اما همون مقدار موجود رو خیلی با دقت کار کرده. این دو تا با هم میکنه. در میان اهل سنت وقتی یک راوی واحد 10 تا 15 تا 20 از بزرگان از شهرکن اله اساده عتی از بازار ممکن شده از ائمه یک حدیث و ممکنه چند نفر از دین نفر نقل و همون ائمه شان به اصطلاح خودش و هنگاهی بین این نقل های واوی فایی کمی زیادی پیدا میشه ما در اصحاب ما این واقعی نیزیشون شیعه در اقلیت بزن امکانات که ما بود اون چه که اصحاب ما به جای این کبسط حددی بود توجه بکنن با همون مقدار کم دقیقت زیاد کردن فرق ما ببراین شد مثلا یک کتاب حریز بود این کتاب حریز رو فرش سه نسخه چهار نسخه داشت اون تلقی اصحاب ما خیلی مونه بود اصلا ممکن بود که ها یه نصفهی که حتی ما الان رو درش خدشه میکنیم اما به اون تلقیه وقع بود بکنم اصلا برای اینکه که در این در باب هست یک رواست واحده بیشتر نداریم که باید تواف ما بین حجر بین به اصطلاح مقام ادراکین و کعده باشیم اون رواست من از حریده هم ضعیده یکی از اون نسخ زایدی به کتاب تا سال به یعنی رو داشته دیگه هم نداریم مونحصر یک روایت و سبابی تا اونم از نسخ زایدی که پیدا وردیم نفس نسخه زایدی خب می‌بینی از حال به قبول شده مشهور شده به کرد لذا امثال سیرت ورت زاره حموله اینا حرفش این بود که ما خبر رو به ماهو خبر عمل داشته میکنیم ما به دنبال ووسوق و اتنانی. ظاهر عبارت ما حقیق می که ما ووسوق و اسمینام پیدا نمی کنیم به امتداد این و بابه علم و علمی سه دو زمان نیست زهماسی که امه علیه و سلام و اصحاب کشیدن به مقدار کافی برای اینکه که ووسوق و بکنیم مدارک در این ما هست نیاز نیست و زند اختلاف ننده پس بنابر این اونی که در کلمات مرحوم محقق این مقدار که توصیه هاشون بروز گذاشت و اما با به نظر از این مقدار آیا واقعا بحثی رو که محققمی مطرح کرده که لوازم کلام نسبت به مقصود به افهام حجته و غیر او حجت نیست آیا این زیر بنای علمی داره واقع نظر از آیات و واقع نظر از مشکلی که در آیات هست واقع نظر از رای شده ارس کنم که خب در این تفصیلی که الان اینوزم اشاره کردیم اونوزم خوندی که مثلا زن به مراد پیدا باشه قرینه بر مراد باشه قرینه بر خلاف نباشه هیچ کدون شد این در حقیقت یک بحث دیگری داره و تعجیم هم هست که از کردیم در کلمات اصولی این سنی شیعه. یه مقدار زیادی مانوب روی مثل اصالتال حقیقه و اصالتال قرینه و این روی و این کلمات مثل مربون آرکوی کم شده البته خود هم کم کرده روی کلمات احل سنت زیاده اونا در حقیقه من خلاصه شده کنم اونا میخواستن مسائل زهورات رو به یک نوع حجیت تحبودی برگردونن مثلا اصمویار اسس ال حقیقت میخواد وضوح پیدا بشه میخواد نشه مقابل ضمن بیاد نیاد ما باید رو قبول بود من شیخ ظاهر عبارتشون مخصوصا شاگردشون ایشون مرحوم در تعلیق مبارکه من شیخ از راه اساتید ال حقیقت اونی که من میفهمم البته ممکن از یه جای دیگه به شعر مساوزه بشه شیخ از ورا اسالات ظهور وارد میشن و این اینطور طور نیست که اگر جای جا اسالات و ظهور یعنی ظهور کلام مهرد نشد ما بخوایم به اسالات و حضیده تعبودن ظهور بدیم به کلام. این رو به نظرم میاد شیخ نظرش این باشه. و نظر خودم ها که این هست. احتمال میدن نظر شیخ این باشه به قرینه شرک شاگردیشان. پس درابر این ما دنبال یک اصل تعبودی به نام اصالات و نیستیم. ما به دنبال این هستیم که کلام باز که ظاهر ظاهر باشه دنبال اصالات عدم قرینه اصالات رحبیقه تعبد به این اصول ما نداره و اینطور هم نیست که اگر کلام ظهور پیدا نکرد با اصالات رحیقه درستش رو کنیم یعنی به عبارت اخراب بر کلام ظهور پیدا نکرد میگیم کلام مجمل حجت نیست من اینو رو سابقا ارز کردم اینوزم روشن میشه اصحاب ما و اهل سنت و بعد اصحاب ما مسائل ظهور رو هم بردن رو مسئله رابطه عبد و مولا این مشکل کار بوده که اگر مولا گفت فلان چیز بیار و این لحظ ظاهر نبود چون عبد باید اطاعت محض از مولا بکنه ولو ظاهر هم نباشه باید باید با عمل بکنه و انجام بده دقت میکنیم ما از همی که همین جامعه رو استاد خونگید که لبا امران مولا عبدهو همینجه در همی این بحث اتاعت و ضرور از بحث اول عوامه شما بگیرید که در معالم خونگیم که پایه جام هست آقای خویی هم داشتن لبا امران مولا عبدهو جعنی به ما مثلا یک خمالی مثلا لزوم اگر اطاعت نکنه استقاق احاب داره الى آخر ما ما این توضیحات رو از کردید که علمای ما در مباحث چه اونجاهایی که برمیگرده به روابط قانونی کار به لحظ نداره مثلا مقدمه واجه واجه هست یا امر بشه مختصی نه یعزه هست یا ببینید اینا مسائل قانونی هست کار به لحظ نداره چه در مسائل قانونی و چه در مسائل لحظی ظهورا برمیگردن به روابط عبدالمولا حالا غیر از این که اصولا امروز شما میزینید در حساب هایی که ما با عنوان قانون یعنی اصول می مسی، مسائل عبد مولا این یه ای فقط در حوزه خود ما کاربرد داشته باشه. خب در حوزه حقوقی کاربرد نداره. کسی این حرفا نمیخواد. رابطه عبد مولا رو زیربنای قانون قرار نمیده. این میخوره فقط به حوزه ما مثل آثار باستانیونه. صحبت علمی نیست رابطه عبد مولا. از اینکه این بوده من در توضیحات صابر ارسلان اون صورت بسیطش این بوده سعی کردن به توجیهات قانون دیگه بهش اضافه کنم مثلا فرس این امروشه مقصدی از عزده خب این خیلی مثال اورفی ما اولا به عبدش اینگه برو نام بخن دید مثلا عبدش در نماز بکنیم گوه آجون گروه ندیستم نام بخن یعنی امروشه مقصدی نحی عزده این خیلی مثال ارفی دیگه خیلی مثال این به شکل قانونیش بعدها تو مباحث اصول ما آمده از تو بحث مقدمه و تلازم به وجودش ای مقدمه و تا آمده آمد بحث ریشه های بحث در مرحله قانونیش همون روابط عبدال مولا بوده ما تو زهورات هم انداختم با عبدال مولا همینجه که خوندید ولذا دقت بکنید آقایان در مباحث زهورات از زاویه و و معاخذه و قانون وارد شده نه در محصص حورال عذابی و فهم ارخی و دلالت کلام <تصفيق> تعمل بفرامیم و ارز کردیم اول مالاقی دازیم که مسئله عبودیه الان کل من فهم از بردگیم به سورا نقطه همین که ما ارز کردیم طبق تصورات ما روابط عبدال مولا صلافیت نداره زیر بنایه اصول قرار بگیره و حقوق قرار و قانون قرار بگیره حالا نخواب آمن بردگی الغاق شده باشه یا نه دنبال ما دنبال الغاق قانون بردگی نیستیم بگر بفرمونی روابط عدم مولا که کجا میتونه مولا معاخذه بکنه نکنه این باید تو فقر قرار بگیره چون اصول زیر بنای اگر شد اون قوانین زیر بنای اصول بشه یعنی باعث زیر بنای اصولی بشه که اصول زیر بنای باشه نه قوابه تقدیم مولا آیا حق دار مولا عدلش رو مؤاخذه بکنه به کلام مجمع دقت این رو صحیحواد بگه نه اینکه این رو بگیم چون مولا مؤاخذه میکنه عدلش رو و رو مجمل باشه پس بگیم اساس حیثه حجیر سعب بودید اینه نمیتونیم قرار این استدلال در اصل نحوه است. کار به قانون بردگی نداریم به نظر ما این نحوه استدلال درست میتونیم و اصل این استدلال درست میتونیم این نحوه وارد شدن در مباحث قانونی یعنی زیر بنای قانون یا ظهورات رو روابط عبد و مولا قرار دادن خیلی, خیلی از جواب سربز و مولا در طول سال خیلی ظالمانه خیلی خسارت قلبی می‌کشن مش تو آب می‌اندازن تو آب گوششون داخل ولی آخر سر حیوان هم پس سرش داد اینا اون که هیچ اونا باطل کلا باطل روابط درست هر نباید زیر بنا قرار می‌کنه حسولا روابط عبد و مولا که کجا مولا می‌تونه ما حاجز بکنه نکنه این رو فقه معین می‌کنه نه دیل بنایه اصول بشه همه بسه خب در جامعه ای که در اون زمان اصول تدیلیم شده نه حدود 1200 سال قبط حالا چون تا ست سال در جامعه بردگی و عبدال مولا بود تصورات ذهنیشون این بود اما این درست نیست یه تصور دیگری هم من توضیح دادم سابقا در اینجا بود و اون آیه مبارکه عبدالمندو که یه در علاشی. خیدم زمینه میکردن من یه توضیحات کافی از کردم اگر ما باشیم وظایر آئین مبارکه این آئین مبارکه ناظر به فطن و قانون نیست این یک اشتباهی که شما در عده چون خود آئین مبارکه زر الله مثلا خدا میگه یک زر ول مثل بزنه زر ول مثل یعنی اعتبار ادبی یه نوع اعتبار ادبیه ما چنان را عرض کردیم در اعتبار ادبی لازم نیست مطلب حق باشه در اعتبار ادبی ولو مطلب باطل هم باشه میشه گفته بشه ولو باطل هم باشه چرا چون در اعتبار ادبی معیار در تاثیر در احساسه مثلا بگی اون فلانی مثل, مثل میمونه مثلا اینطور حالا ممکن است این رستن در تاریخ وجود نداره وجود نداشته وجود داشته باشه. این مهم نیست که رستن وجود داشته باشه. نه؟ شما به یک انسان عربی بگید مثل رستن تحکیل میتون در دنیا عرب رستنی وجود نداره تو دنیای فارس رستن وجود داره تو دنیا عرب شخصیتی ولو قسطوری حالا فقط ما هم نماشه به نام رستن وجود نداره شما در اعتبارات ادبی تو تاثیر احساس نگاه نداره خب جه اما در اعتبارات خانونی امره واقعی احساسی میهی آثار داره کیسر داره تختیب آثار داده میشه مثلا اردوسته ارد دفت کنیم آثار بر اون مترتب میشه اما در اعتبارات ادبي آثار نداره این توجه نشده مثلا اینالالالای از سهی مثلا ما بعود دارم فماکه این مثال عظمیت خدا میتونه که پشه بگیر حالا ممکنه است شما مثلا فرس مثلا مثال به یک مرچه بزنید. این مشکل نداره این حکم و قوامه این لذا اگر ما باش این منشع شده که در آن در تیگه از عباب فر عبدالمندوکن لایر در حالا شید روید این عبدالمندوکن لایر در حالا شید واقع اجتماعی زمان رسول الله به رفت این یک واقع اجتماعی بوده اگر ما باشیم آیه مبارکه برقال الله و مثلا عبدالمنون کند آید داره این یک مثال عددی اصلا هیچ حکم قانونی بایی نمیشه اصباکی و توضیحات رو هم چند بار عرض کرده در روایات ما اونجایی که بدون شکه یک مورد یک حفی برای این را شد، یک مورد قاله علیه بر السلام برقال الله و عبدالمنون کند یک مورد در کل کله قمعبی یک مورد یه مورد دیگه منتقد شده البته معارض داره که اگر مولا اجازه داد برده شده تا بندهش اش عبدش ازدواج کنه میتونه مولا طلاق بده یا نه مشهور در بین اهل سنت هم گفتن نه چون طلاق دست عبد دست دیگه مولا نیست ما روایت داریم که طلاق دست عبد و طلاق هم در دست مولا تمسخ مورده که باید چون معارضای مورد نمیشه مثال مثال کل غواردی که ما در فقه از در نام دوشندایر داره، داره در روایات دو تا سه معارض داره که قبولش مشکلی یک نمونهه اما شما کتب و اصول اعلامش، کتاب توفیق اعلامش الله دیدی؟ همین موارد چیزی تو جیبم هست. خب، یا یه مورد قبول نمی‌کنی، میگی یه مورد خاص امام فرنده. مشکلی به یه مورد نمی‌شه، قائد فقهی درست کرد، دقت بکنی، درست به قبول و این هست اومده در کلماتشون اومده. در موارد زیادی ثغاهای ما در درجه اعلا معلوم کردن داره علاشین باشه. باشه واقعا این آیه نشده. دقیق می‌فرمایید؟ به نظر ما یا اون یک مردم قابل نقامی مشکل ایجاد نمیکنه، باز لازم تعابدی قبول بکنه. یا بگیم امام علی الحسین به حسب ذهنیتی که پیش مردم بوده برای استینات ذهن آیه رو برده. در از یک مورد قابل صحبت هست که مورد اونقدر مشکل درک نمیکنه. اما که کتب فقه نه ده ها مورد انتزاع شده. که در فکر آمده ارزن من بود کنید لای شرارن و روش شعصی و آثار کردن قانونی گرفتن خوب دقیق این اینه محلی که بایدوش کار بشه مستقلا بحث لطیفی من نمیخوام خواهرم پس بنا برای این خوب دقت بفرمی اینا در بحث حجیت زباهه خوب در بحث در, بزامی در, بزامی در حجیت و به ذهن ما این مطلب خودش روشنگی ما نمیتونیم زاویه بخص و ظاهی حکییت رو ببینیم و کیفر و جزا و قانون چون ظهورات و عرفی هم رو عرفی ببکی به عمام و قانون نشه. ما یک ظهورات و داریم کلام یک ظهوراتی داره و اگر کسی بنابرای شد یک معنی واقعی ها رو توکی ها بحث دیگر دیست منکر ظهورات در خود بشه انکار ظهورات در آب انکار وجود که پس از آموزش شو یعنی اگر بالایی در آب زوهر حرکت که هرچی باف فهمیده بشه این مثل انکار وجودی استفاده با اون ندارم در اینکه زوهرات در وجود داره سیل رشته در ظهوراته بلکه انسان هم لغت و دمان در واقع انسان خیلی بالاتر ترین ها اصلا هم بارد بحث های واقعی و جانب های قیبیه زبان پس این مطلب همینطور که مرمون و استاد هم دارونن دیگران بحث زهورات و عرفی کاملا یه بحث روشن همین یعنی الان که ما داریم مذن نیم ساعت صحبه مونه همینش احتمالش بحث زهورات و عرفیه اگر زهورات و عرفی و بیان روشه، بشه هم تماظن می درسته مثلا تماظن رو داشته هم این به دیگران نمیگردی، به ما نمیگردی. ما الان باوره ست چند هزار ساله هستیم. این اگر اون میراز های ما از دیگران نباشه، خودمون هر چیزی رو هم کالیشی بوده، این چیکار کردیم بگم؟ ما یک سوژه از اصولی، یک مثلا پاشی پاشی آدین بکنیم؟ این تمردان در سر انتقال بر اثر دقت بر اثر زبورات که انتصاباتی است که دکتر آمین این جایه انکار نیست یعنی این رو به اینکار نمیتونم انکار کن مطلبی سامزن روشن این نمیتون کنام یه نمطقه خیلی احساسی که این در قطعه شده ببینید من میگم آب سرد است یا انسان حیوان ناطر است به اصطلاعی قضایی در وقت بانده در اینجا دو قسمت از بحثه دیگر داری کار دا برد بشاری دو مهمت رو شما باید در نظر بگید دو نقطه احساسی رو یکی این که مفاد خود این کلام که مرکب از انسان و حیوان و ناتقه به لغت فارسی یا به لغت اینجیسی در بسرک میان یا در لغت احرابی میگن تنویی جای بود یا در آخران این صحباتش نیم این که این یک مفرد داره و یک دیگه ترکیبی داره این یه بحث یه بحث این که من شعرازه کردنم وقتی بگید این کتاب ملک هست این کتاب ملک من هست خب این مذرود یه مذرود دارم این است که کتاب هست. هست من از تو رابطه <تصفيق> یه دفعه شما میگید من مرادم چیه؟ من وقتی بودم این کتاب ملک من هست معنای مجازی را دکنم یا من هر روشوند یه خبیه هستم در هست. دو نقطه اساسی در ظهورات هست یکی ظهور کلام فی نفسه و مدیود کلام یکی این که من چی میخوام و مراد من چیه همیز رو که برموستاد فرمودن که مدیود تصدیقی به غهر مراد چیستی این که مراد من چیه پس یه قطعه حالا من برگوازه از همین جهاز با شروع کنید دو بخش واقعی یکی خود کنام یکی کشف مراد موت کنده مثلا توی بحث فقر اگه یاد آرون باشه در بحث در معانی هم بیان هم آمده در, در بیان آمده در, در بحث فقر هم توی بحث کزم هم موشه بودن از صورت یعنی به خواب مقاسم محرمه آیا منیار در کز خلاف واقع بودنه ولی مرا که صدا زار که مناظره نشدند که رسول الله علیه و آله. رسول الله یشاید آن مناظره کردند مناظره می‌فهمد مناظره کرده تو رسول داری. خدا هم می‌دونه سر اما مناظره دروغ میگه. مناظره دروغ میگه مرا که رسول الله. دروغ کجا ما با صحبت می‌کنه؟ مرادونه در بوده. درو میگن مرادش این میگه. ارکان حالا شمایی که بیشه یکی تا شداری مدیول تر لفظی یکی حال سیاه قرنه یا حافظ در اونجا دو تا مختیار در نظرگی مختیار ما اگر خود دقیقه کنه نقطه شیه در اصول وقت که بحث زهورات رو مذبت کردن عذابیه دوبه مذبت که مراد متکلم میشیه به چون از این زاویه من ره کردم لذا از چه راهی وارش از این راه وارد شدن که این لفظ تا چه مقدار حکایت از مراقبت کلمت کنید حکایت کلمت کنید و اگر جایی همشک کردیم چه اصول و قداری وجود داره من در گفتن حساس عدن آخرینه حساس و این لفظ نحوه کشتش از مراد متکردن به چه نحویه مثلا شیف احساری و دیگران گفتن به نحوه زنه زن آغاره این زنی که بیگن این بنا پس اونا آمدن وقتی گفته این کتاب ملک منت بیگیم که این تعبیر چیجوری از مراد پس این دار گرفتن یک مزیدور داره این کلام مدرور رو در حقیقت مراد متکلمشیه نه مدرور خود کلام ها مراد متکلمشیه چون اینجا و این لحظه رو کاشف زنی قرار دادن بفتن این نفس کاشف فرقیه نیست نتیجه کردن اینجا زن به خصوص خارجه سر که شیخ انساری و مردم اوستار بحث توجیهت دو زواهرم اینجا جاوردن روشن شده اصلا تنین لبر روشن بشه. اینا رفتن دنبال کشف مراد رو نکرده تن مولا قدرم رفتن چه مدرک کردن چون مراد مولا چیه نه اولا ببینن ظهور لفظ چیه تجریه بحث خود درارت لفظه شد. یه بست کاشفیتش از مراد متکنده اون خود بر هم بودن که اگر مدار صحبت کرد این رو بجده. یعنی این آمدن دنبال این بحث در حصول واقع شدن حصول به مراد متکنده و راه رو پیدا بکن برای اینکه که به مراد متکنده برسن چرا آه. شما اعتهاد پیدا کردن که خود الله راه هست اما راه زنیه لیکن این رم به خصوص حجته اما با میتونید در مقابل این دقیقا نقطه دیگری وقت را هست و اونی که شراب فی نفسه نگاه کنیم ما بایدی که از زباده را نگید اون مراده اونی که در جامعه وجود داره کلماته این در جامعه وجود داره این کتاب رو بکنه از این به معنی داری کتاب بیر مدره. بیر مدره. رو بکنه یک معنی داری منم یک من داره اصل معنی کنه حیرت تکیبی هست داره این معنی معنی دیگه ما نوسته این نداره که دوباره مراده متکرده بریم چرا آقای دوباره مراده متکرده می رفتن؟ به خاطر این که رابطه عبدالمولا بود و بوده، بود و عبد باید از اوضعه تخییر رو بغیر اگر افضا مولایی در نه تو باید این رو گذیر به این شما از در بحثایی مزیرمی یک انسان ها ایوان کار نمازیم مانتا کلبشین ولی از من از در یه روزیت در اول بحث از خلال اولین باری که این عبارت اصطلاح یونانی ترجمه شد افضای روشاره ظاهرن حبا روشن همید که شبا همه برگوش شاره دارم یادم در حواشی شد از سودی هایی خودشی داره اون به چه گرفتن به هر حال در اصول الباب و شاره مراد اما در منده و فلسطه الباب رو نفسه آیه برگوش متکلم نداره یه دامان کرده اینکمالا شیخ اصالی هم برناشی باشه ما به جای این بحث که مراد او چیز و ما بگیم درس این, این چه زهور داره و مولا حق نداره عرض شوبیش از مبدار زهور ارپی معاهده بکنه دکت یعنی مولا حق نداره عرض شوبیش از ظهور ارپی معاهده بکنه همون مبدار زهور ارپی آقایی هم در باون مبدار آقاده که چون مولاست من نوستش رو توضیحش رو از کردم قیل از ها این که مسئله بردیگی ارها شده قیل از این که مسئله بردیگی و عبدال مولدان را توی حسوسی بناقرار میگیره من توضیحش رو از کردم رابطه عبدال مولدان رو ما نباید در فرزمون رابطه حالا مثلا به هر صورت و قروفی شوق این عبدال ممنوع کندهایت رو را داشیم نباید اون تو قانون و حقوق بیاریم چرا؟ چون د رابطه عبد و موردایی نفتی اصازه هست عبد به وجوده همه که موردا هست یعنی همه همه اجزای موردایی لذا ممکن است در اونجا بگه این عبد باید مراهز بکنه برای مواده احتیاطی برانه مشابه ممکن است حبد چون حبدی اون تصور حبدی که دیگه داره براشه اما این به درد تفسیر قانون نمیکنه. در قانون مردم در عبداله قانون که اون ملکیت ملیت اعتباری نیست اون خوب داره ملکیت ملک. اصلا حقیقت نمیست ملکیت بلا هم اضافیه نیست که از نیست چرا اون قابل اون اصلا در قباری ترور نمیست چون هیچ در اعتباریات نمیست اون ملکیت دو مقدارمون در اعتبارات بیمونید دخلت, دخلت از این نقطه رو دخلت بکنید مشکلات مشکل ثبوته تکتیم و مالگی رد این که افقاق بردگی شده باید صورتا ولی رد این که را خیلی از در غرفی اشتغال داشته و باید از در بشه نقطه ثبوت در از دو مقدار داره من یک قرینه وجود داره با اون ملکیت و عرض اعتبارن د ملکی یک این ملکی یک خواهی نخواهی برش مسئولیت بیشتری بیاده دیگه تو نمیشه اعتبار قانونی رو جدون اما در قانون وقتی ماه بحث قانونی بکنیم مردم که مثلا دلوقت دلوقت هم برکتن یا امام که نیستن اینکه اینکه برواید اینکه برواید صحیح همه حضرت از از اون بروسه ما یک برونتی حقا میگه اینا میگه مردم عقید شما هستن بردش شو بنده شو بنده ما هستن شما شما ما مردم برد ما این نمازن ها علیه هم هر خود تاهکای هر رو بایدوش کنن و بردیگی بردی بردی. الان هم در قانون یه الانی یکی از دو تا دیره شتابات قانونی سخت شتابات رو شتاب نیست روی داره یکی از مطالبی در روح قانونه این از که نواید قانون یا حاش با مردم، با شهروند، با مباطن، با افرادی کردن معامله یا برده با شما در کلمات مثلا خاشایی و ناسیندشان مردم را برده یه مثل شیصان یا مردم در اول ختاب پنزیول ملیه میگه سلطان ختاب رقوبی به خودش گرفته لایوس علا امایف علا همیوس اصلا مثل خدا شده مالک و بردن رن شده. را یو سالا اول تنگیر در نفعی استضاع الله در حال شیف تا اینجا این و آن شروع کردیم ما در محضر زواج دنبال چی هستیم؟ گوشون به وراد مولاها یا انعقاض ظهور برای خود کلام خود کلام با ارسا و اگر انعهاد ظهور شد این انعهاد ظهور به قلعان زمنی نیست این قطعیه به لذا در سال یادشون فاصلهشون میتونم یادشون ما از کلیم مجموعی ظنون محتبر رو که شیه همسایی رو رای که بعد مرمز یاسم باشه پنجتا اول و برمجه برمجه برمجه شوهر خطبایی دار حجیت اجماع برنده وجل خبر واحد این 8 تا ذننی خاصی که معلوم شه هنصاری چنین رو بوده قرار اولیش است از همین حجیت زواله فقهی زمینی میشه پس اون نکته زنی و فقهی روشن بود این ورنه بعدش تا فرض حالا تکمیل نشه بعد تمام شده اون نقطه این اینه که ما کلامی نقصه ببینیم به این کلام باید در درجه زهور خوب دکت بکنه در درجه زهور هم نرسید اسمش نه مولان همزانه با کلام رو بکنه و مقدس کلام خوب اون من الان میشه بحثو بگم پس حالا چون بحثامو چه ما پس بنا بر این آثار دینی چه راه ببینید اینا که باعث از محور اصلی دین جامعه نشه پوزیشون حفظ <متحدث> نه ببینید این کلام در فهم ارفی همینه اون وقت یکی فهم و اون اینه که اون چرا ما از سلام ایشون میفهمیم ایشون هم تفهیم و لذا من از رکن اساسی دلالت بردی رکن اساسی ورد و اینه تفهیم و متقابل مسافين و و قد عبد معنی شانری رو می‌کنه اگر معنای شانری صابت شود اینا نقطه بحث در اینجا که اگر کلام یک نوع اجوان پیدا کرد با یک اصول تعبدی مثل اساس و بگیم مراد مولا این است انجام بده این درسته نه سوال اینه نه اونم رو که باشه کنار اونجا مالیشم ورده قبول نمی کنه این هر چی بود درس را حدزه بعد دو حجت بعد بیان اینا خیال میکنن اگر بین هضم نرسه مثلا چه غلطی می کنه نه چه غلطی می کنه بحث الله